فیلم آدم نویسنده محمد هادی کریمی بازیگران بهرام رادان به این پرونده پزشکی خانم رویا من زاده است که سابقه اختلالات روانی هم دارد. محتاب کرامتی من رو داشتم اون شب موقعیتش فراموش شد حامد بهدار گفتم بابا این دو اختلال روانی دست خودش نبود اختیارش نبود زریور کشته لیلا اوتادی خیلی کنجکاوم بدونم این خانم که اینقدر حواستو پرت کرد و دنبال اینی که نجاتش بدی کیه با حضور افسانه بایگان زینا این مطلبو رو بخونی و ویراست داری بکنی عتبالدین صادقی حرفم اون زد باعث و پارو تجربه‌ام بزرم و یه سر سوزن خودم شک کنم. سیامک سفری اولو خلاص خودش بیاد بعد قرار شد من برم اونش سیقی آریا ازیمی نجاد، کارگردان رضا کریمی، تهیه کننده محمد پوستی. ادهی در کنار دیواری در صف ایستدن همه مغمومن و توی خودشون مردی با ویلچر همونجاست یکی دو نفر مشکی پوشیدن مرد جوانی دستش بانپیچی شده مرد دیگهی با اصایی ایستاده بینی زنی گچ گرفته شده تازه متوجه میشیم که این افراد دم در سازمان پزشکی قانونی کشور ایستدن دو زن از در خارج میشن ماشین پلیس وارد میشه مردی میان سال دست بند به دست در حضور دکتر پزشکی قانونی روی سندری نشسته و صحبت میکنه دکتر جوانی قد بلند با موهایی که کمی می شده و چشمانی سبزاوی من گشتمش باید میگشتم مجبور بودم به هم دستور دادن چند دفعه به دستور داد؟ سه دفعه چهار تا انگوشتشون خودشون هم میدیدی؟ فقط صداشو میشنیدم یه حرکت عذبی با صورتش میگوند دفعه اول از رادیو دیگه شنیدم را خاموش بود ولی صدا ازش میمد چشم چپش مدام میپره دفعه بعد از شلخهای درخت صداش صداشو شنیدم توی پارک هر شستم از تو شلخهای درخت صداش میمد و بعد, بعد تو گوشم میپیچی اون وقت همیشه یه حرفا میگفتن آره گفتن خیلی کثیفه همه رو گمران میکن و به فساد میگیشه بعد از کشت شدانش چی گفتن؟ مرد متهم میخند تشکر کردن فکر میکن اونا کی هست؟ نیروی انتظامی در کنار متهمه برشته های خدا یه بار دیگه ببقی چجوری کشتیش اول میخواست خودش بیاد بعد قرار شد من برم خوش میدونستم که اون همیشه تنهاست و همین توی ساعتی رفتم که اون دور منو نبینه. اخ دیگه اتلورا بالا دیدم در و باز و رفته تو سالون کافیه دکتر از پشت میزش بلند میشه و ناگهانی به طرف متهم میره <تصفح> چشم تو باز میکنه متهم دست دکترو میگیره و اجازه نمیده چشمشو ببینه هیچ چشایی که من میشدام شب میزدام شب محمود دکتر از دست متهم خلاص میکنه دکتر میری و سرجاش میشه به به محمود متهمو بلند میکنه و از اتاق بیرون میبره متهم دسته دستحت کامل روانی احتمالاً تو زندگی راجع اسکیزوفرمییا شنیدیده میخواد تقلید کنه. دکتر این مطالب روی کاغذ می نویسه و امضا میکن. معمور در عقب ماشین ویژه بررسی صحنه جور رو میبنده و ماشین به راه می دکتر از ساختمون بیرون اومده و میخواد سوار ماشینش بشه که میبینه همون متهم سوار ماشین پلیس میکنه. متهم با چشم سالم به دکتر نگاه. دکتر سوار ماشینش میشه و مطالبی رو با دستگاه ضبط سود ضبط می‌کنه جزئیات خوبی هم به کار می بود. صدا از رادیوی خاموش یا نظایر این اطلاعات و فرنیا خوب بود فقط چند تا نکته ظریفش رو اینکه این, این بیمارها حتی اگه صد دفعه هم ازشون بخوای صحنه ارتقا بقط رو حینا مثل بار اول تعریف میکنه و هیچ وقت به این صورت داوطلبانه جواب نمیدن جالب وقتی به بهانه معاینه چشم رفتن نزدیکش به از من دور بشه عکس العمل دیگه‌ای نشون بود. دختری در حال پیاده کردن مطالب ضبط شده ای دکتر روی کاغذه. دکتر هم اونجاست. در یه اتاق بزرگ اونم کتابخونه وجود داره. خانم دکتر با دانشجوی صحبت می کنه. این تئوری بعضی بیکاری های اجتماعی اصلا میخوام یه تحقیق آماری داشته باشیم. آمار به راحتی قابل دسترسیه. رس بحث روانشناختی جرمه. کاغذ درست اون باشه. حتما با هردون تماس میگیره. خدا حافظ. خانم دکتر هم به جمع اونها میپیوند. مطالبو خوندن. خیلی خوب بود. البته طبیعی به نظر میرسه. تو به خاطرش خوبه امکان ای داری که خوبم ازش استفاده می‌کنی. یه خبر خوب دکتر رشیدیان قرار شد مقدمه کتابو بنویسن. بعید می‌دونستم قبول کنم به خاطر ما این کارو نکرد. فکر کردن کتاب سالها تو ها ورق میخوره و همه اسمش رو می‌خونن. زینا، این ماده رو بخونی و ویراستاری بکنی. نظر تو راجع کلیاتش کلياتش بهم بگی. فقط تا آخر هفته دیگه گش کن نداره. از نظر من اشکال نداره ولی آخر هفته استراحت. نه من هم هم تباشا همین الان هم کار. دکتر در مطب خودش در حال جمعوری وسایلشی که منشین پیشش میره یا آقای اومده میگه مریض نیستم برای خیلی کتا میخوام آیی دکتر مافی رو ببینم اسمش آقای زاهدیه زاهدی؟ یه میشه سم حالا تو؟ بیتون چشم منشین میره دکتر کیفش رو جمع و جور کرده در اتاق باز میشه دستی با کت سیاه به در میکبه پسری جوانتر از دکتر با روزنامه ای در دست وارد میشه و در میبنده. سلام به منو چی گفتی مریض نیستین؟ با من چیکار دلیل؟ نه مریض نیستم. یعنی چرا یه موقعی بودم مریض خودتون خدمه. سعی میکنه دکتر سرعتش رو ندونه. خب میگفتیم پرونده تون هم بیارم. باشه. نه حالا مهم نیست بفهمش. مش به دکتر نیست و روزنامه رو باز میکنه. اوه اینو کی پیش من اومده بودی؟ خیلی خیلی سال پیش بازم بر نمی کرد دو سال دو سال مشکلت چی بود؟ مشکل چی بود؟ آه, آه. مشکل این بود که فکر میکردم آدم پول داری شدم کارخونه دارم ملک و املاک دارم و مستقلاتو اینا بعد هیچکس باورم نمیکرد بعدا وز همونطوری فکرام هنرپیشه ام امضا میدم عکسام چاپ میشه میزنم میذنم منظورم اونا ولی گوزم همونطوریه که باورم نمیکرد تا اینکه فکر کردم من سیاستمدار خیلی بزرگیم. ام سخنرانی میکنم این و اون براش شما همون گفتی که اینا رویه های دوران کودکیت دوست داشتی معروف و پولدار و مشهور اینا باشی و نه ولی گلا خوب شدم خب تا اینکه دشوار یه بیماری دیگه شدم حالا به عنوان هنرپیشه و سیاستمدارم علا کسی نمیشناسه اصلاً مهم نیست الان میبینم کسی خود منو نمیشناسه یعنی حمید زاهدی حتی شما دکتر سرتونه اونا تا که منو خوب میشناسی. دکتر مافی از جاش میشه به طرف حمید میره بغلش میکنه. حمید تو عادی زا آدم نمیشی. بس کنه. خواستم فقط سر و سر به سلام دکتر. این بهترین راهیه که میشونم گولت بزنم و خودم رو به یادداری کنم. خب نه بزن، کنم. ام. دیگه چه دکتر؟ تو چیکار منی؟ واسه را مهندسی. مهندس چی؟ چه فرقی میکنه؟ خب چه وقت پیشم محمود شفیه رو دیدم ردون نشونه تو از اون گرفت چی بخوری؟ من که چهایی میخورم اما یه قهوه نست تا این مهتب شب دو تا قهوه ما آمدیم چیکار میکنم؟ شده افسر راه نمی دارندگی جریما تو میتونه درست کنه خب دیگه بگو رو برایی؟ هی hey, رو براهم خیلی وقتی میخوام بیت سری بزنم فرصت نمیشد از یه طرفم نمیخواستم وزرمو چم دلم براش تنگ شده بود مریصه ندیدی نه نه نه راحت باش ولی به هر حال کار داری خوبه با هم بشیم مفصل یه حرفی بزنیم روزی شوی یاد گذشته ها عالیه من اتفاقا یه باغچه دارم اطراف ترون بعضی موقع اخر هفته ها میرم اونجا آره با هدايان نه ندارم ها پس با رفیق و اینا آره ولی این هفته تنها میرم میای آره، چرا نه. در کنار رودخانه زیبا که درختان سرسبز در کنارشه، دکتر مافی و حمید با لباس‌های غیر رسمی، بلوز آسینگ کوتاه و کفش اسپرت برپا. ادامه‌ طول افصار معمولاً سر کارم. روزو پزشکی قانونی بعد از اون متن. آخر هفته‌ها میام یه جونی ببینم. روزی خوشگلیو. خودم 5 کیلومتر زمین اونور زمین خریدم دارم میسازمش. یه منظره خوشگلیه و یه جای مخصوصی ختمش میگن. حتما یه که زمین اونجا بخرم. نه، من پول ندارم همینا همین هم با کلی قرض و قله خریدم. باز میذین خدمتتون. دست رو دنباس دید مهندوست حالا هر بروی رو بالکون و ساختمان روی منقل جوجه کباب میکنن زرفه که کم زدی عمل نایی خوبه دیگه بابا پردی بیزن همینه حمید به نرده تکیه میده و دکتر جوجه ها رو باد میزنه تو فکر نیستی؟ تو فکر چی؟ زنگ گرفتن حمید در هم میره دکتر نگاهی بهش میکنه ای بابا ای بابا تعیر کمی فاصله میگیره و روی صندلی میشه خواستم نشد دکتر به کارش ادام می. بید. اولین بار که دیدمش زننی یه بابای سی سال از خودش بزرگتر شده بود که <تصفح> البته منم؟ ششم بهشتر داشتم زده شوهرش مرد عاشقش شدم با خودم فکر کردم حالا قسمت منه قرار به من واسه چیه رفتم جلو از خللقی داشت. های داشتیه عصبی بازیایی خوشگل بود دوستش داشتم بعد. اینجوری هم میذاشته که ساعت مهنگ غیر قابل پیشمینی چه بیارم؟ به دیوانو بازیه عجیب کاری. اما بعدش از جایی بعد من دیدم دیوانه شد. دیوانه شد خوب ادامش حمید نمیتونه ادامه بده دکتر منقلو با سیخهای جوجه و گوجه که روش گذاشته بود رها کنه و پیش حمید میاده روی سندلی روبروش میشین بلت کرد حمید توان گفتن نداره از دکتر رو برمیگردنه بلند میشه قدم میزنه و لای درختا خودشو گم میکنه وقتی خوردن نهاره جوجه ها و گوجه ها آماده است دکتر رو آماده کرده ترشی و ماست هم براه دکتر پشت میز میشینه همید هم در سکوت نشسته خب بالاخره نگفتی چی شد همید جواب نمیده دکتر برای خودش برمید حمید زن تو حرف همید تو فکری، دکتر نگران به همید نگاه میکنه آدم کشت یعنی چی؟ بارد میشه 20 روز بازداشته ندیده میشه شد قاتل؟ چطور این اتفاق افتاد؟ برادر رو کشت سر ایرس و میلاس به اختلاف میخورن بازیر تو میتونی نجاتش بدی یعنی من رو نجات بدی دیگه راهی برام نمونده بود رفتم گفتم یعنی یادم دادم گفتم بابا این دوشان اختلال روانیه دست خودش نبوده اختیارش نبوده زدیار رو گفتم میفستنش پزشکی قانونی حالا تست روانی اینا. ما امون چوکی بهم گفته بود تو اونجای یه رفاقتی کن یه گوهه جون رو برش ساده کن با که تحفیفی چیزی اصلا شد دادتش اگه تو میتونی کاری بکنی. دکتر به فکر فرو میره کار دکتر تحت تأثیر ماجرا قرار گرفته. و هیچ کدوم قضا نخوردن. دکتر پرونده رویا ملکزاده نامزد دوستش رو به دقت مطالعه میکنه. کارمند دکتر وارد میشه. به بیرون اشاره ای میکنه. رویا ملکزاده لباس آبی به داره چادر مشکی بر سر، دستبند بر دست در معیت یک مأمور زن که اون هم چادر مشکی بر سر داره وارد اتاق میشن کارمند در میبنده لحظه این نگاه رویا با دکتر مافی طلاقی میکنه دکتر به دقت در چشمان رویا خیره شده رویا هم همینطور رویا زنی چهل و چند ساله قد بلند با صورت استخونی و چشمانی سبزابی رویا خجالت میکشه و رو میگردنه دکتر سر به زیر میندازه اما باز نگاه میکنه رویا بفهمی بشین رویا روی سندلی با کمی فاصله از میز دکتر میشینه معمور کنارش قرار میگیره دکتر پرونده رو تبرخ میکنه و نگاهی به رویا میندازه میدونی چرا اینجایی؟ رویا به علامت منفی سرتکن میگه تا به حال پیش روان پزش یا روان شناس رفتی؟ رویا سر به زیر می‌ندازه. مهمور بهشونش میزنه یعنی جواب بده. من دیوانه نیستم. هر آدمی ممکنه به هر دلیلی پیش روان شناس بره این اتفاق برای شما نیفتاده؟ نه. از داروه آرامش استفاده کردیم؟ هیچ وقت. من یه آدم کاملا طبیعیم. دنبال نباشی اواși من رو روانی دیوانه نشون بدین یعنی سردری ما قبول بکنیم که ارتکاب کافی است بر اساس خواست و اراده معقولی شما بوده. دقیقاً. یعنی یک رویا سکوت میکنه ولی اونطوری که اعترافات شما رو خوندم اگر اون درگیری پیش نمی اومد شاید اون شب مهدی عظیمی کشتنه میشد من آمادگیشو داشتم اون شب موقعیتش رو هم شد آها یعنی از قبل کشتنش فکر کرده بودی یعنی پیش از اینم نظر سوی به شما داشت جواب بده اگر اینطور بود پس چرا اون شب تنها رفتی پیشش قرار نبود تنها بشه قرار بود وکیلش هم بیاد که در مورد زمین حرف بزنیم که نایمات ولی تو اعترافاتت نگفتی ضرورتی ندیدم بگم ولی همه چی رو کامل گفتم یه وری هم برام بگو به روسری‌ام درست به حرف معمول گوش میکنه و روسریش رو کاملاً جلو میاره تا اندک موی که بیرون بوده دیده وقتی دی رفتم تا حیاط نشستم گفت سرده بریم تو من قبول نکردم در مورد زمین حرف زدیم گفت شرط منو میپذیره خیلی تحجم کردم تازه گفت کمک میکنه مشکل ثبتی زمین حل شه بعد حرفو کشون به یه دیگه رویا چهره عزیمی رو به یاد میاره که در کنار سخت به اون خندیده سیگار. سیگار کشه من 25 سال پس من چه فکرم وقتی فهمیدم نیتش چه پس تنهایی رویان فرار کرده توی ساختم بس رایت مگه داخل سلام بود بله به تو کسان تو نرفتی عظیمی بالا برده بود داخل خب اومد تو سلام گفت قرار نیست کسی چیزی بفهمه به مهم کرد هنوز جای نخونش رو تنم مونده از دستش فرار کردم دویدم بیرون اومد دنبالم تو حیط خوردم خندید اومد بالای سرم گفت از وقتی میترسم بیشتر خوشش بیاد گفت من بزن بزن تو صورتم باش آدم نگاش کردم گیش شد ولی باز میخندید اومد نزدیکتر خورد تو سرش رویا به یاد میاره که چوبی از او زمین برداشته و محکم بگردن فرار کردم تا نزدیک ماشین رفتم مرده بود نبات اونجا میمود برگشتم چهت طور کشید رفتی سراغش سه چهار دقیقا جنازه انز روی آب بود داشت میرفت سیر آب تکو نمیخورد خیلی سخت از آب کشیدمش میروه رویا جسد عظیمی رو پشت ماشین انداخته در رو بسته پشت فرمون نشسته و بعد از اونجا میبردمش بعد هم جنازه رو بردی دکتر مافی کنار میزش برمیگرده چرا اون موقع نمیخواستی کسی تو قاتلی ولی بعدش رفتی و همه چیز رو اعتراف کردی ترسیده بودی؟ رویا سنش رو پایین میدازی برد سخت نبودی مسافت طولانی جنازه رو با دستت بکشی خیلی طولانی نبود مثلا چقدر؟ پنج شست متر جایی که نشسته بودی از ویلاهای های دوروبر دید داشت دقیق نکردم مسیر خروجی و اون ویله هست که نرستخ میگذره؟ رویا کن میده جوابش مثبته. چه نشون جایی که جنازه سوزوندی و پلیس نمیدی؟ شب تاریک بود دقیقه نفهمیدم کجاست. نتونستم آدرس بدم شادم از این میترسی که اگه پیدا بشه پروندت کاملتر میشه و مجازاتت سنگینتر بولا خیزه هرقه مثلا قصه دکتر مافی باز هم در ماشین ماوغه رو با دستگاه ضبط صدا ضبط می‌کردید نباشه یه جوری خشک و بیروح در مورد حادثه های ناخوشایند حرف میزنه که نمیشه باور کرد نه حالتی قاتل پشیمون رو داشت نه کسی که از ارتکاب قد لذت برده مکسایی که می‌کردو استرابی که تکه چهرش بود غیرعادی به نظر میومد نگار همه جزئیاتی که میگم با دقت پیاده کن که دکتر مهرایی بخونه چون این از اون مواردی که آدم میترسه مبادد تشخیصی بده که از روی احساسات باشه برای همین یه مصیری که برایش گذاشتم که هم در مورد نکاتی که بهش رسیدم فکر کنم هم با این فاصله یه شیوه دیگه ای باشم مصیری بدونه شاید کاری لازم باشه تو مصاحبه این آدم که میتونه دکتر توی خونه اش پیغامگیر تلفن رو روشن میکنه کنه و کاتشو در می. سلام از دستم در می ری زنگ زدم مشیتم گفت مریض داری نمی تونی صحبت کنی. خودتم که تمکی زنگ نمیزنی. من تمام امیدم به تو بود ولی فکر می کنم نمیتونی کاری برام بکنی. خوش برام دعا کن هم برای من هم برای رویم. پزشکی قانونی دکتر مافی به اتفاق با... کارمندش از ها بالا رفت. پرونده خانم رویا ملک‌زاده تو بعد بله بود باش بد نیست بدونید جسد مقتول پیدا شده اما قابل شناسایی نیست. سوخته نیست. کجا؟ حوالی همون ویلا با فاصله ای از جاده. خودشان فهمید؟ بله دفتر دکتر. رویا با همون شرایط قبل در حضور کارمند دکتر روی صندلی مقابل دکتر نشسته. دکتر بعده پیدا شدن جنازه پرونده کامل میشه. همچنان احساس پشیمونی نمی کنی اون همون جوری مرد که می پس از این موضوع خوشحالی من قرق شدن اونو توی آب دیده بودم یه بار توی کابوس. دکتر تعجب کرده توی همون ویلا همون سخت ولی اون نمارد رویا درسه بیرون اومدن عظیمی از آب سخت رو همه چنازه شده شد توی کابوس هم ندیده بودم حجب بود خیلی حجب بود از کابوست ببو که این کابوس رو دیدی خیلی وقت بشی بعد از اون بیگه مهدی عظیمی رو ندیدی ازش میترزیدم ولی بهش فکر میکرد اینه به کشتنش فکر میکردی آخرین بار قبل از اینکه که بکشیش قبل از اون کابوس مهدی عظیمی رو کجا دیدی؟ به همون بیلا بازم هم تنها بودیم طریق اون شب چی شد که برای از اون ازش میترسیدیم چه اتفاقی افتاد چرا دیگه ندیدیش چرا فقط تو کابوس دیدیش چرا وقتی این جنازه پیدا شده شوکه شدی ها به حرف بزن بخواه پاکت کنم دست دست صورت میذاره و آجزانه گریه می کنی معمول رویا رو ببنیش. از روی صندلی بلند منصول این پروران تو آقایی کی وحامات جنایی یک بیماری از ایر مجموعی سایکوسا که خیلی هم خاص و قریبه این بیشترین احتمال در مورد رویا ملکزاد است اون تو اعترافاتش کابوسش رو به همراه بخشی از واقعیت بازگو کرده در واقع باور کرده که مهدی عظیمی رو کشته از طرفی همزمانی قتل مهدی عظیمی با اعترافات رویا ماجر رو پیچیدهتر کرده همه جزیات رفتاری این زن نشونه همین بیماریه. وัจجودی میشه ثابت کرد بیگناهی آدمی که با اعتراف خودش باجوبیداره مازیار کیف در دست منتظر سرهنگ هدایتیه که صداش رو میشنوه سرحنگ که در کنار یه مأموری بود مازیار رو می‌بینه و از پل‌ها پایین میاد آه ببخشید تو چه تا جمدی تاثیر شد اون اعتراف کرده اعترافشم این اتفاقی که افتاده خودش صحنه جرم رو باسازی کرده میشه برام منم یه بودی باسازی نه همچین وجود نداره ولت تشخیص ما اینه که اون یه بیماره. بیمار؟ چه بیماری؟ منم الان بیمارم، اوره خونم بالاست نه نه، یک بیماری روانی داره به اسم هیستری کاسرو سایکوس. یعنی چی؟ حالتی که فرد چیزو تخیل میکنه بعدش هم باور میکنه یه اختلال هذیونی و وهمیه. فهم چیه دکتر؟ جنازه پیدا شده الان تو پزشکی قانونیه. ولی شناسایی نشده، شک ندشه با شناسایی میشه. سرشون شلوغه. دکتر سکوت میکنه. ببین دکتر جنون. شاید چیز نصیب تمام تو من توی ماجراهاام. اندازه تمام کتابایی که تو خوندی من پرونده بررقزدم. ای دست من بود دستن دکون دستگاه شما رو جمع می کردم. من نگاه تو صورتی کی بکنم میگم قاتلی یا نه راست میگی یان صحنه سازی بود یا نه گردنی کسی اندتن یا هر چیز دیگه؟ این گواهی که بیماری گفتی چی داره؟ هستری سودو و سایککو هیچ کمکی نمیکنه فقط این گواهی نیست اگه من فرش داد پرونده پدشکی رو کاملتر میکنم دیگه چه اطلاعات دیگه هم میخوام از این پرونده بهم بدین تو این پرونده رو یه بار خوندی اطلاعات بیشتری هم نمی‌تونه بددم مگه اینکه پاسپورت پرونده دستو بده سرحنگ میره دکتر با کت و شلوار از ماشینش پیاده میشه وارد ساختمان بزرگی با نمای شیشه‌ای میشه منشی دفتر حمید بوشی رو میذاره و دکتر به طرف در دفتر میره ببخشید آقای مانگس آقای دکتر مافی اومدن شما رو ببینم بله بفرمایید آقای دکتر همین با پیر صورتی سر و کراوات قرمز که شل بسته شده در دفتر رو باز میکنه و جلووی مازی رو سبز هم شده بخوایددعوضانکنچه؟ همین قذبی مازی ها رو همین وارد اتاق میکن و همین در آن بوده تو یه حرفایی که با من زدی به کلی هم گه ای؟ آره ولی اونو قبوله میکنه خب معلومه اون قبول نمی میکنن از عظمی مرده چی میگم؟ کشته شده بیا همین روزامه جامعه جمعه برمیداره و به دست مازیار میداره عکس و خبر مربوط به مهدی عظیمی توی روزامه است مازیار میخونه حتی اگه این آدم کشته شده قرد توسط رویا نبوده هرچند به نظر من مرگ این آدم آرزوی رویا بوده نمی... ببین یک بیماریه که فرد در اوها و تخیالاتو خودش دست به قصد کسانی میزنه کداشون نفرد داره چرا میبیچونی؟ مگه تو گفتم یه گواهی جنون سازه کن یعنی خواهش کردم چه میتونم بنویسی که موقع ارتکاب قط دو چهار اختلال روانی بوده اصلا بده اون کوبیت بده من به خدا پنجازش خلاصش می‌کنه اصلا این حرفو نیست من اگه بتونم ثابت کنم رویان بیماره ثابت کنی چی ثابت کنی تو تا بخوای یه چیزی رو ثابت کنی که میره بالای دار مازیار من دارم رویا رو از دست میدم من نمی‌خوام کابوسی که دارم هر شب می‌بینم اتفاق بیفته خب منم نمی‌خوام اتفاق بیفته اصلا همه کاری که دارم کنم بر همینه فقط همین خوب خب من اول میخوام ویلایی که خط توش اتفاق افتاد رو ببینم. یه نشونی ازش دارم حمید میره و کوتوشو از جا رختی برمی‌داره. مازیار هم که فشو بر داره و میره. حمید و مازیار در ماشین مازیار به سمت ویلا میرن. همه چی داری خونه، ماشین، مستقلات، کول. اشخی نداری یعنی هیچی نداری. سرکله رو که پیدا شد گفتم دیگه تمومه دیگه اومد حالا فکر میکنم دارن از من میگیرنش. انگار دوباره هیچ چی به ویلا رسیدن. همین پیاده شده و بعد مازیار جلوی در باید چه باید باید؟ کسی رو از بالای دیوار نگاه می‌کنه. کتش رو در میاره به مازیار میده. امتدا حمید و بعد مازیار از روی دیوار توی باغ میپرند مازیار جلوتر میره هر دو از زیر آلاچه رد میشن به کنار ساختمون رسیدن حمید درم امتحان میکنه بست هست مازیار نگاهی به استخر میگذار پارکینگش اینجاست در ورودی ساختمون استخر. فاصله پارکینگ تا ساختمان اقدر زیاده مازیار چند قدم فاصله میگیره و نگاه مردی از پنجره طبقی دوم ساختمان داره اون نگاه میکنه مردی میان سال با موهای جوگندونی و جلوی سر خالی مازیار من نفهمیدم چی رو تو خواستی اینجا رو خم چیزایی که تعریف کرده استحنه قاتلی که واسه پلیس کرده تزیکیداره با جغرافیایی رو تطبیق میدم. آخه جغرافیش همینه دیگه این استخره اینم هم همون ویزوسان دریک نشسته بودن دیگه داره ساخته اون اومر رو در بخورجی ویلا اون سمت چه باید کسی برای خروج از ویلا است که نارسخر بشه خب اگه راحت بودن قصد از من برجلش وسط دنیا تو نسازن نرفتی. از جای تعقیب تفاوت ده اینه. شدم دوست داشت اینجا اتفاق گرفته مازیار شروع میکنه به عکس گرفتن از استخر و ساخته ما مازی ها چند پله پایین میاد و پیش همید میرسه اوجه از اومری کجا هست تو چه فکری هستی؟ این فکر که دردر نمیانم داری چه باید میکنیم خب چیزی دستگید چود؟ یه کار دیگه مونده چی؟ خب با یکی از اعضای خانوادش دور و بریاش مثل مادر، خواهر پدر، برادر صحبت کنم. کسی ها نداره این پدرش بازوش چی چه نداره این؟ کسی که این اواخر باش بوده باشه خب من خودم تو که فقط چند ماهی میشناسیش؟ من میخوام به ولوک یکی هست کی راستش را دست هم نیست مازیار رو حمید سوار ماشین شد این دختره نداره که داره می‌ماند پیشش دختر خونده رویاست دختران بیست ساله یکیانده دماغ که اسم ما پنج من اصلی نمیشه خوردش. اون بعد بچه‌مون توستش تو خانم فکر میکنه سر باباشو خورده نمی‌دونم هموش کشته. بازم نیست بشه حرف زه نمی‌دونم تو حالا من حرف می‌زنم فعلا من نمیام ببینمش حال وضعش به هم من یه زنگ می‌ذارم که مطمئن باشم اونجاست. باش قابل. خونه ندا، خونه بزرگ و شیک. وسایل زیادی جمع شده و توی کارتون روی هم قرار گرفته. روی سندلی ها و مبل‌ها هم سفید کشیده شده. مازیار هم منتظره که چشمش به یه تابلوی نقاشی می‌افته. منظره‌ی سرسبز و آسمانی آبی که چند نفر از تپه به سوی کلبه‌ها دراز می‌رسند. ندا سینی آپورتغال در دست با لباس آبی و شال صورمی نزدیک مازیار. فبخشیت خونه من کاملاً به هم ریخته است. اینجا رو تازه فروخته بعد باید تخلیهش کنم تابلو راشنگیه ممنون کار خودتونه بله. این نقاشیتون رو جوانیم کشیدم اینجا زمینه یه اجدادی مونه البته نه اینن یکم هم, هم تخیل کردم ببخش به طرف تلفن مازیار نگاهی به دورو برمی کن مگه نگفتم نگه اینجا زمینه زمینه مازیار توجهش به مکالمه ندا جهل میشه نداد تلفن رو قطع میکنه و به طرف مازیار ها بر بفرمایین چه کمکی از من ساخت است ؟ ندار روبر مازیار میشه. همونطور که آقای زاهدی بهتون گفتن من روان پزشکم رو پرونده پزشکی خانم روی ملککسی دارم کار میکنم. میخواستم یه چیزایی راج بهشون بدونم. بله بپرسیم اون چند سالی که تو خنواده شماست؟ خفت سال توی مدت از ثر روی روانی چه ووضعی داشت؟ به نظر من اون هیچ وقت تععادل روانه نداشت. بر اسی چی رو میگی؟ پیش مید که اون از یه صبح تا شب؟ چندین حالت واکانش مختلف و از خودش نشون میداد سر یه موضوع بیاهمیت به شدت عصبی می شد و پرخاش کرد کمی بهت بیجهت خوشحال و مهربون می شد. یا بیدلیل نگران بود مستره بعدی دفع آروم می شده و گوشتگیر اصلا همه رفتاراش عجیب بود جوی فدارن بعضی وقت مثل دو خبرچه لوس رفتار می کرد گاهی اوقاتم به مستبد خود رای بود اینو تصویر کللی که ازش تو بلند شده به طرف تلفن. ندان نگاهی به مازمن میکنیم و سیترین عت میکنه و به طرف مازمن برمیگرده و مناستیم. بعد از مرگ پدر تون حالوزش چطور بود بدتر از قبل به ارتباطش با شما به خصوص ماه های اخیر. ما هیچ وقت با هم را بهته خوبی نداشتیم. حتی وقتی پدرم زنده بود. چرا ؟ هیچ وقت نتونستم علاقش رو به پدرم باور کنم چون به نظرم واقعی نبود. او فقط به خاطر پول ثروت پدرم زن شد. فارغم که با این کارش ثابت کرد اشتباه نمی‌کنه. منظورم کشتن عمومه اختلاف رویا با عموهای شما سر چی بود؟ ارث و بخشش باز و بخششای بی پدرم به رویا که هیچ کدوممون باور نمیکردیم. ولی ظاهرا اختلاف فقط سر زمین نبوده. چرا فقط سر زمین بود؟ که اونم اگه رویا لجبازی نمیکرد حل می‌شد. اگر هر چیز دیگه رویا بهتون گفته، دروغ محضه. خانم رویا ملک‌زاده از قبل در مورد کشتن عموهای شما حرفی میزد. رویا همیشه می‌گفت که یه روز عمومو میکشه. ولی من باور نمی کردم تا این حد خبیث باشه. چند روزی از عموم خبری نبود. هر فکری میکردم جز اینکه رویا اونو کشته باشه. وقتی از پیدا کردنش نامید شدم، خبر گم رو به پلیس دادم. اونم از همه بازجویی کردن از جمله رویا. اونم به قتل عمو اعتراف کرد. میدونم شاید خواسته معقولی نباشه. اما چون سالها هم خونه شما بوده، می‌تونی کاری که ذاتو میخوام انجام بدین. همین توی ماشینه. مازیار میاد و توی ماشین میشینه. و شاید ملیت هم کد کرد. کومودو و اصل شخصی رویال گشت تا سینا رو پیدا کنه. کل مدارک پزشکیش. از سهم خوردیگی آرتوروف تو مراجعه به پزشکی. مازیار پاکت روی صندلی عقب اندازه. در خونه خانم دکتر مازیار با دستگاه پروجکشن عکسی از ساختمان ویلا و استخر جلوی اونو روی پرده انداخته ایستاده و برای نگار و خانم دکتر که نشستن توضیحات. صحنه قتوا برای پلیس بازسازی کرده. چیزایی هم که گفته از نظر اونا منطقی قابل باوره. ولی از نظر من نه. مثلا گفته داشته از این مسیر فرار می کرد تا به درب ورودی برسه. در که انتهای مسیر اصلا درب ورودی نیست. یا اینکه مهدی عزیزی داخل ساختمون قصد تعرض بهش داشته. در که استنباط من از گفتهای خودش که اونا اصلا داخل ساختمون نرفته بودن. کنار استخ نشسته بودن و حرف می‌زدن. اینکه چرا از جلوی استخ فرار کرده؟ ممکنه حل شده باشه و مسیر رو اشتباه رفته. یا صحنه تعرض هر جای ممکن اتفاق افتاده باشه. کمکی به ما ولی به نظر من همه‌ینو ساخته ذهنشه. ببین. مهم اینه که این قتل در واقعیت اتفاق افتاده و جنازه پیدا شده. مشخص نشه. اما مدارک و شواهد میگه که رویا ملک زاده قاتله. خانم دکتر بولن میشه و چراغ رو روشن تا اینجا که توضیحاتت اصلا قانع کننده نبود مازی. منتظرم بقیه حرفاتو بشنوم. قبلا این خانم پیش روانپزش میرفته. تو چنبوری که مراجع کرده از کابوس های دوران بچگی صحبت کرده. و اینکه دوباره اونا به سراغش اومدن. به اینا اضافه کنین یک گواهی مبنی برای اینکه از ناحیه دست راستو چرخ آرتورز کوگناس. پس قائلتنه نمیتونه جسد یک مرد رو برای یک مسیر طولانی روزهایی بکشه به نظرم میتونه یه اختلال هزینی یا شبه پسیکوستریک باشه. البته این بیماری رو به شکل خفیفش ممکنه داشته باشه. اما اونچه که مرد بیشتر نگران میکنه درگیری بیش از اندازه تو با موضوع پرندگی خانمه. توی رمانش شناسی نبودی. میدونم حالی هستم شنقت تجویه بهم میگه اون نمیتونه قاتل باشه. البته تا یه حدودی هم به واسطه میشناسمش. یعنی چی؟ اون از دوست قدیمی منه. پس دیگه حتما باید ارتباطتو با این پرونده قطع کنی. یه پزشک با بیمارش به خصوص با یه متهم نباید ارتباط عاطفی داشته باشه. با واسطه یا بی واسطه. ولی شما میدونید که ترشح من ربطی به این موجود نداره. امیدوارم اینطوری که تو میگی باشه. خب دیگه کار بسته. شما گرسنه‌تون نیست؟ من میرم اشزی رو براه کنم. خانم دکتر میره و نگار نگاهی به مازیار که در فکر خیلی کنجکاوم بدونم این خانم که اینقدر حواستو پرت کرده و, کرد و دنبال اینی که نجاتش بدی کیه؟ شاید تو کا دقت کرده باشی این تو پیاده کردن حرفای من حتما متوجه شدی که این خانم با اینکه نامزد دوست قدیمی منه ولی اون بقیه آدما هیچ فرقی برام نداره. در اینکه شما دکتر فوق‌العاده هستین و برای مریضاتون اصلا فرق نمی‌ذاره که کسی شکی نداره. چرا خاموشم؟ نگار بلند میشه. نگاهی به مازیار میندازه و چرا خاموش. مازیار پای تصویر که حالا نزدیک تر آبورده میره نگار هم پیش مازیار میاد سایه پشت پنجرهی طبقه دوله رو ساخته یه دقیقی به اینجا به نظر تو این سایه آدم نیست نگار ابتدا نگاهی به مازیار میکنه و بعد عکس رو می دقت میکنه و بعد به طرف مازیار میچنه من فکر کنمم تمث رویم الاکتصا دچار تامی اینو میگه اون میری بچهناغ روشن مازی ها در دفتر جناب سرحنگ مینشسته و جناب سرهنگ پرونده رو مروع میکنه. پروانه این پروانه پزشکی خانم رویام تصاده است که سابقه اخلاات روانی هم داره گواهی منم به عنوان پزشک متخصص که بعد از ارتکاب قط بش مصاحبه کردم زعیمشه این خانم باید تحت درمان قرار بگیره. یعنی چی؟ یعنی که یه مداد باید بستی بشم که شما تو ماته خودتون رو به شغل ساعت هنگ پروان میبنده می اون نیست. نه. حرفای اون روزت باعث شده پارو تجربه هم بذارم بزرم و یه سر سوزن به خودم شک کنم. اما همین امروز یعنی همین نیم ساعت پیش یه شاهد تازه بر این ماجرا پیدا شده. این آقا هم شب شاهد حضور خانم رویام الکساده در ویلای مهدی عظیمی بوده. با مهدی عظیمی آشنایی داشته. یه لحظه اومده دم در ویلا و با مقتول صحبت کرده. و خانم ملکزاده رو دیده که تو ایوون نشسته همون شب همه چی اینجا تموم میشه از تو ما داستانها رو بشیم همین خانم که شما میگید باید بستری بشه از تو به دو قتل دیگه اعتراف کرد چند روز گذشته موزیار و سرهنگ از پلاه اداره آقایی بالا میاد قتل مردی به نام سعید سرندی که 7 سال پیش اتفاق افتاده و قبندش انوز بازه و قتل پدرش که سال پیش پ فراغ تحقیقاتی که ما کردیم هرگش کاملا مشکوک بوده عجیبه چطور همچینی ممکنه چرا تا به حال اعتراف نکردی بود عجیب نیست قتل هایی است که قاتل بعد از سی سال میاد اعتراف میکنه نمیتونم باور کنم نبایدم باور کنی چون وقت مجبوری قبول کنی تشخیص اشتباهه دیدی دی دو تو جون دیدی در عالم خود سیر میکنی؟ اگه کار ما رو دست شما بده چی به سر این مرد میواد روان پزشکی و جامع شناسی و چه و چه و چه چطوری من باید اونو ببینم باش حرف این دو تا قتل مال چند سال پیشه یعنی دیگه کاری نداری اون حالش خوبه از من تام حواسش خیلی جدی‌تره حتی تو باجویه آخرش گفته قصد ارتکاب یه قتل دیگه داشته بعد ملاقات چند دقیقه صبح شبش اونم نور ملاقات دکتر سرحنگ درو می‌بنده و میگه مازیار تلفن همراه بده دست، از در بیرون میاد و صحبت میکنه. بله آگاهی هستم. ها. اونم ترتیب بسته شدن روی من زاده رو بده. ها. نمیذارن. میگن مأمور ملاقاته. تو این فاصله به دو تا قصه دیگه هم اعتراف کرده. دو تا دیگه؟ عجیبه. اون وقت تو همچنان مصری که اونو بستری کنی؟ اصلا نمیفهمم دنبال چی هستی مازیار. اینطوری هم دست خودت میدی دست بقیه. مطمئنم اگه بستری بشه اگه شما باش مصاحبه کنین شاید بشه خیلی ثابت کرد. پاسپورت پروندهش پر محمدی خاله خب ببینم چه کار میشه کرد. ببین خبر میده. ممنونم. دست شما درد نکنه خاله. خدافظ. خدافظشو. رویا در سلول خودش صداهایی در سرش میپیچه. رویا سرش رو به دیوار میکوبه. در زه بچه‌ای رو پشت در شیشه ای اتاق میبینه. مرد زنی وسط اتاق میاد. بازم سرش رو به دیوار. حداقلش مرد سیله محکمی بزن میزنه. زن میافته. رویا باز سر به دیوار بیان. مردی نشسته رو میبینه که زنی پلاستیک رو سرش میکشه و خفش میکنه باز سر به دیوار میکنه خودشو در حال فرار میبینه و عظیمی به دنبالش از در ویلا بیرون میاد. سر به دیوار میکنه چوب از زمین برداشته و به گردن عظیمی کبیده و توی استخر افتاده. سر به دیوار این بار حمید روی مبل نشسته و سر به زیر انداخته هم اونجا نشسته حمید با دستمال بینیش رو تمیز بکنه قطعی چند نفر یعنی اگر اینقدر هیچی که بوده فرم نمیدرسته دل پشتن چه یه اکس ازش دارم من میشم رو باشی میکنم باش حرف نزارم تندگی میکنم ترجیح میدم همیشه اینجوری ببینم اشتا پوشی میداری زندر بابر ببینم ازیار ممکنه رساسش کنن آره کمک نه نه باید کمکش کنیم هر طوری کشی باید کمکش کنیم اصلا شاید اون دوتا تا مشون بوده این مهدی می. شاید هم برش پوشت رس کردن ممکنه اگه بتونم یه بار دیگه ببینمشو باش حرف بزنم خیلی چیز دستگیرم میشه تو میتونی کمکش کنی اگه دیگه نبینمش اصلا برای مهم نیست چون جاش اینجا محفوظه فقط میخوام بزنده بمونه همین الو سلام سلام خوام دکتر با خازی محمدی صحبت کردم قبول کرد برای معاینه و تحقیق خانم و در اختیار ما بذاره یعنی کی؟ به محصد حکمی شدن پرمندش در زمین آسایشگاه بیماران روانی مازیار و خانم دکتر روبروی رویا که با چادر مشکی نشسته نشستن یه معمول زن پشت سر رویاست نگار هم کمی دورتر نشسته و مینویسه گونه و پیشونی رویا کبوده خانم دکتر ابتدا نگاهی به رویا و بعد به مازیار میدازه مازیار چشم از رویا بر نمی‌داره. دکتر نگاهی به نگار که به اونها نگاه میکنه و نفس عمیق میکشه میدازه چی باعث شد که سعید سرمدی رو بکشی؟ میگه فاشقمه. منم باور کردم. قرار بود ازدواج کنیم. خیلی از فهمیدم همه چی دروغ بود. ولی تو دوستش داشتی. اون من یاد پدرم انداخ. به وحشت داشت. یعنی چون شبیه پدرت رو کشتی؟ من نمی‌خواستم این کارو بکنم. مجبورم کرد مقصر بود چرا چرا فکر کردیم اجازه مرگه چطور به این تصمیم رسیدی اون خود رو از همه پنهان می‌کرد ولی من شناختنش پس باید مجوزاتش می‌کردم تا این کارو به آدمهای دیگه نکنه یه شب که تو شرکتش منو اون من تنها بودیم و مطمئن بودم سرمدی رو به یاد میاره که مشغول خوردن غذا از پشت سر بهش نزدیک میشه کی به سرش میکشه و اونو خفه نیکنه چرا در قتل سعید سرمدی تو حالا به کسی حرف نزده بودی یا چرا خود تو به پلیس معرفی نکردی؟ نمیدونم شاد چون کشتنش به مارمش داد بعد از اون تصمیم گرفتم با هر کسی که آزارم به درم این کارو بکنم. و نفر بعد پدرت بود هفر بعد اونو میکشتم خیلی بشه از این چرا اون بیشتر این ظلم در حق کرد باز رویا به یاد میاره همون ای که پشت در شیشه ایستاده بود بچه گیاه خودشه شاهد نزای پدر و مادرشه مادر خیاتی میکنه و رویای کودک از اتاق بیرون میاد مادر رو پشت چرخ خیاتی میبینی مادر قیچی برمیداره که پدر رو بزنه پدر سیلی محکمی به مادر میزنه مادر به زمین میفته و قیچی توی شکمش فرو سرش هم به زمین اصابت کرده تمام. و همه این ماجرا رو رویای کودک نظاره گره آروم بالای سر مادرش میری میشینه خون روی فرش ریخته و مادر دیگه در این دنیا نیست رویا عشق میریزه و سر بلند میکنه ماما ماما اون هم مادرم ازم گرفت همکاری کرد که تمام عمر خودش متنفر باشم من بچه که بودم تو تنهایی اون بارها کشتم فکر می‌کنم همه عمر قاصب کشید اما یه شب فکر کردم دیگه حسام کافیه باید بمیره پدرشو به یاد میاره که بیحال روی تخت افتاده و دستشو برای آمپول به طرف رویا دراز سال‌ها بود که دیابت داشت آخر عمرش من مرا تذکرش میزدم اما یه شب با وجود تمام التماسی که به من کرد رویا سرنگی خالی و پر از قبل دستشه آروم باشه ببین میخوام فقط به یه سوال دیگم جواب بدی بعد از گمشدن مهدی عظیمی تو تو بازجویای پلیس به قتلون اعتراف کردی همینطورم قتلای دیگه خب چنقدر دیر کشتن یه آدمایی یه راز بود پیش من نگه دیگه همه میدونم خیلی خوب خیلی خوب عزیزم میدونم پسته شد میگه میتونی بریم من نمیخوام برگردم زندان خواهش میکنم نصدار منو ببرم خانم بطور با سر به ممور اشاره میکنه که ببردش ممور زن رویا رو بلند میکنه خانم دکتر فکرم داریم به جای خوبی می‌رسیم. ریشه همین اتفاقات به دوران کدکیش برمیگرده اگه اینجا بستری به شما به تراپی مونده تا بدیم منم دیشب غصتم همین بود ولی نتونستم نتونستین نتونستین مازیار از اتاق خارج میشه نگار از سر جاش بلند میشه و به دنبال مازیار از اتاق خارج میشه خانم دکترم بلند میشه بیرون مازیار رو می‌بینه که روی نیمکت در حیات آسایشگاه نشسته و نگار دست به سینه و عصبی در کنارش ایستاده. به طرف اونها میره. تو میخوای بهش کمک کنی آره. حسواد منطقی باشی. شما اونو دیدین باش حرف زدی. به نظر این تحلیل من اشتباهه. من اصلا اینو نمیگم. اثبات فرضیته که مشکله. می تو چرا متوجه نیستی بین یه مجرم با یه روان روانفرش اصلاً فاصله ای نیست کسی که دچار وهم و حزیانه آدمکشیه ممکنه واقعا مرتکب قتل شده باشه میدونم همه چیز واقعه اما اگه روی ملکساد قاتل واقعی نباشه چی اگه به خاطر کینه و نفرتش نسبت به اون آدم‌ها یا به خاطر بیماریش اعتراف به رو کرده باشه چی همه حرف من اینه که امیدوارم بتونم ثابتش کنم این مستلزم یه همکاری مشترک بین ما و پلیس چی کاری نمیتونید بکنید که بیشتر اینجا بمونه با بازپورس صحبت کردم گفت حد تا فردا زهر میتونه اینجا بمونه گفتم بستریش کنن فردا براش یه اینترویو انترویو میذارم اگه بتونیم جنون و صفاحتش رو ثابت کنیم اگه میشه اینطوری نتیجی گیری کرد که این قسلو تو شرط طبیعی اتفاق نیافتاده و این یعنی تخفیف در مجازات این حد کاریه که میتونم بکنم اینو میگه و میری اتفاق مازیا سکوت. چیه؟ مگه تو همین نمیخواستی؟ که دوستم شهاب سرودیو بیست و دو تو دوباره چی هستی؟ درمانش آزاد کردنش. پی مازیا من احساس میکنم تو تونا خودا گاهی خلبان دلت این آدم قاتل باشه. ولی خب کاری از دست برمیاد. پلیس که نمیذاره قاتل بیمار آزاد باشه و بازم آدم بکشه که. آدم بکشه؟ خب به هر حال ممکنه. شبی رویا در اتاق سایشگار وی تخت. جک تخت و بالا آورده و به حالت نشسته رو مازیار وارد اتاق میشه به تخت نزدیک میشه و پشت صندلی نمیست من اینجا میمونم نه زیاد با من چی کار میکنم بر بیادی زندان همه آدمایی که من کشتم گناه کار بودن باید مجازات میشدن ولی شکست نمیفهم نه؟ ولی غذابت کردن کار سختی. ولی برای من سخت نیست من آدم ها را خیلی زود می شناسم آدم خوب مثل تو خیلی کمه ولی آدم های زیادن. نمیشه از دستشون خلاص شد تو پولیس گفتی میخوای یه نفر دیگرم بکشی من کیه عزیمی رو من کشتم ولی اونم همینو میخواست بگم کیه چطوری میخوای باقاشیش میفهمی خیلی زود تو داری میری زندان منونیست کی؟ چطوری میخواید تو زندان آدم باقاشی میتونم من قدرتشو دارم نگاهی نافذ به مازیار میدازه مازیار کمی نگران شده همون شب مازیار توی خونه تنهاست و پای لپتاپ نشسته و اکسا رو بررسی میکنه همون تصویر رو جلو میاره در قسمت پنجره زوم میکنه جلو جلوتر تر میره. و تشخیص میده که عکس همون مرده در آگاهی نمیدونه چی کار کنه عکس رویا رو که حمید بهش داده بود نگاه میکنه اونو کنار کتاباش قرار میده و به عکس خندان رویا نگاه میکنه میخواد بخوابه خوابش نمیبره توی فکر رویاست. و بالاخره میخوابه رویایی رو میبینیم تعدادی ایستادن شنل کلاهدار سیاه به تندارن و در یک باغ هستن یکی یکی بر میگردن. صورتشون سفیده قابل تشخیص نیست یکی دیگه یه مرد یه زن یه مرد دیگه تا میرسیم به جسد همون مرد توی ویلا که خونی روی زمین افتاده رویاخی سرق از خواب میپره این صحنه ها رو اون در کابوس میدید چون ورجیون خونه مازیار مازیار روی تخت دراز کشیده لطفا پیرامون بگذارید بی احتیاطی بزنید چشم بسخت دوخته. آقای دکتر بافی اصرار بیهوده شما برای انتقار یک قاتل به اسویشکا همونطور که حد می‌دادم تبعات خطرناکی داشت اون رو سو فرار کرد هر میدم چه چجوری اما من اول شما رو مقصر میدونم و بعد خودم دکتر مهرابی رو شما رو دارن ببینم مازیار با ماشینش به ساختمان نیمه کاری میاد. از پلهای آجریش بالا میاد. از راه روی عبور میکنه و به نگار میرسه. چه ل اینجا؟ حالم هم نمیومد. تو از ماشین گردشه؟ فکر کردم اینجا انقدر اینجا سوتو مازیار رو نگار به اتاق میرم و رویا رو میبینم که شال آبی بزرگی دور خودش پیچیده و روی زمین نشسته. بله. کار دکتر بوده. رویا پاشو. باید از اینجا رویا توی ماشین مازیار کنار خیابان باستن نگار هم توی ماشین خودشه و پشت سر اونا توقف می‌کنه. رویا خواب مازیار از ماشین پیاده میشه لنه ساختمون ازدهار باز چرا وایسری ببریمش بالاتیکه ما از اتر برگدم و آساشگاه شک میکنن توی دیگه وایسنجا آنم توی سر باشن نگار از ماشین پیاده میشه و پیش مازیار میاد مازیار به طرف ساختمان میره و نگار دست به سینه به ماشین مازیار تکیه میزنه. شما خانم چرا هر دفعه این ماشین رو کجا پارک می‌کنید؟ الان براش می‌ذارم ببخشید. یعنی چی الان براش می‌ذارم؟ هر دفعه کارتون همینه. دفعه اول تونستش که اشتباه گرفتین آقا. من اشتباه نمی‌کنم. آقا اشتباه گرفت. من اشتباه نمی‌کنم خانم. این دفعه پنج شب قانون جورش شاتون تا دفعه بعد از این کارو نکنید. چیکار می‌کنی؟ چرا حرف validity میشه؟ مازیار چشم باز می‌کنه. نگاهی به مازیار می‌کنه که داره با بغی صحبت می‌کنه. هم که مشغول جروبست با مرده مازیار متوجه جروبست نگار میشه از اون طرف خیابون میدوه و پیش اونا میاد نگار سوار ماشینش میشه و عقب میره مرد راضی شده و میره مازیار ناگه ها متوجه در باز ماشینش میشه به طرف ماشین میره رویا رفته به اطراف نگاه میکنه نیست پیزنه من این خواهیم نهیمونه شما بکین دن دقاب برو سلامتی هر روز، هر روز ما کار گرفتنی دارم ما کارم درستم میدونم، حالا یه اشتغای پیش اومده هر روز یه اشتغای میکنم شما نهده، فعلا، نشون بودم نهده، فعلا، نشون بودم نهده، فعلا شال آبی روی زمین افتاده. نگار پیش مازیار میاد. خراف. نمیدونم دونم. نیست. توش براس سشکا. آمیرا دو مارش. خونه همین. مازیار ناراحت و پشیمون روی مبل نشسته. همین کت و شلوارو کرهات پوشیده، نوشیدنی برای مازیار میاره. تازه هم روز اول یه باره جون ازت خواستم. الان. خودت عادی همه چی خراب شد. شایدارم هم نشده باشه حتی با این اون دو تا قتل رو اعتراف کرده بشه ایک کارش کرد ها؟ اون کاغذو بده به من پا تو بکش بیرون مازیار دیگه نمیشه من بعد جوری گیرم من غلط کردم من با این کارم همطور که بهترین رفیقه می انداختم تو حچل هم یه باز کسی رو بکشه من دادم دا تشتن به دا همین سادگیه کی رو بکشه اگه بفهمم من فرارش دادم هاشا کن اگه چیزی لو رفت دیوان بلنده یه جوری وانمود کن که انگار هیچ چی با ما فقط باید رویا رو بگردیم پیدا بریم همین تقصیر منه حت میزنم رفته باشه خونه این دختره ندا اگه اومد کشه من تو رو در جریان میزارم اگه تو ازش خبر گرفتی به هم بگو گوش کن رفیق تقصیر من رو خودم رو دارم بهت میگو من نمیذارم موضوع نمی از این روان سرختن اینجا همه پرسنل سنجیم کردن نه تو منو خاست هنگ دو اتیام بود نمیدونستم باید بهشکی بگم خو آ ماشی من همش رو بر توضزیح فقط دروغ نکن او من گفتخواد یه نفرگه رو بکشه براکاشم زمان ترین کرد می گفتفت خیلی زود گفتم حد تو زندان گفتاست هرجا که باشه تاکید مهمی بود فهمیدم دو چرا توها آدم کیه خواستم تو زمانی که تعین کرده کنارش باشم ببینم چه جوری میخوادین کار بکنه به خاطر همین فراری شدم شدی مجرم دکتری که خودش داره رو, رو روان شناسی جرم کار میکنه نمافی این راهش نیست برش کردون یه کاریش میکنیم نمیتونم چرا از دست من فرار کرد این روش تو بکردم فهمی ترسم اون که گفته انجام بده یه نفره بکشه خودستو تو موضعی قرار داده که همه تشخیص و تو زیر سوال ببری میدونم خب الان با چیکار کار کرد هر کاری بگین میکنم کاری به صبر نمیشه کرد یا اون امروز آدمی رو که گفته میکشه پلیس پیداش میکنه و تو میشی بازنده واقعی ماجرا تاوان قضاوتت یا ممکنه یعنی امیدوارم دوباره به تو پناه بیاره که در این صورت ممکن هم تو هم اون نجات پیدا کنید خدا عشق از افتادت جناب سرهنگ به پزشکی قانونی اومده و توی دفتر دکتر مافی باهاش صحبت میکنه سالها بود که کسی نتونسته بود از آسانشگاهی که تحت مراقبت ماست فرار کنه آخه این بار یه مجدم مرد بود که فرار کرد ولی خب اینجور کار کارا از اون بعید نبود اما این خانون... فرقاتی که ما کردیم نشون میده یک نفر کمکش کرده کی هنوز نمیدونیم ولی میفهمیم امیدوارم از زورتون از اون یه نفر من نباشم امیدوارم هرچی باشه شما روان پزشک معتمده پزشک قانونی هستید نباید چه نکاری کاری ازتون سر بزنه خوشحالم که اینطوری فکر میکنید چون به حال من کاملا متوجهم که کجا دارم کار میکنم و چی کار دارم میکنم چون حتا اگه کوچکترین شکی به شما باشه دیگه اینجا نباید بیرین ما چند سال هم دیگر میشنفیم خب فکرنا لازم نیست از موقع که اینجا این بله ولی تو این مدت اصلا دیده نشده که تا این حد به مریضی حساس بشید خب چرا ولی تا این حد نبوده در حال بوده شما برخلاف شما که فقط به وقوع جرم و اثباتش فکر می‌کنید بعدش همه چیز براتون تمام میشه ما سعی میکنیم همه چیز یک ریشه یابی روانشناسانه بکنیم که بعضی موقع این ریشه یابی منجر به اثبات بیگناهی متهم میشه به نظر من خانم رویا ملک‌زاده یک بیمار بوده و اگر شما همراهی می‌کردید میتونستیم بهش کمک کنیم حیف یه سوال دلیل اینکه قبل از مصاحبه با این خانم اینجا خاصی که پروندهشو به تو بدن چی بوده من قبل از هم پرونده ها رو می پرونده این خانم کیس جزایی بود. آه. پس یادم باشه پرونده اون یکی که قتل که این خانم بهش اعتراف کرده رو هم بدم بخونی. قتل سعید سرمدی، بابت کیس جناطی. باقی پرونده داره یقین میکنه که کار این خانم بوده. چهره نگاری از زنی که برای آخرین بار پیش مقتول بوده، به این خانم خیلی نزدیکه. سرنگ. یه سوال جسد مهدی عزیمی شنسایی شد؟ میشه میشه دیگه امکبرم اون موقع هیچ چکی برات نمونه که این خانم بیمار نیست و فقط یک قاتله قاتل ست آدم البته اگه در این فاصله مرتکب و قتلی نشه که اگه بشه هفتوس بخوری چه اشتباهی کردی انقدر سنگشو به سینه زدی دکتر جوان سرهنگ دم در نگاهی به دکتر میکنه و میره شب شده مازیار توی ماشینشه به طرف خونه میره ناگهان رویا رو کنار خیابون میبینه توی پله نشسته صورتش هنوز کبیده مازیار از ماشین پیاده میشه و نگاهی به رویا میره توی خونه نشسته با ولد ساندویچیو میخوره مازیار قدم میزنه رویا معذب میشه مازیار نیسته و مهربانانه به رویا نگاه میکنه از تو بخور رویا لبخندی میزنه و دور دهنشو تمیز میکنه رویا ساندویچو توی پیش نسته مازیار به رویا نزدیک میشه و میشینه چرا قایدی پیش من؟ کسی دیگه ای رو نداشتم تو آرومم من میکنی مطمئنم تو میتونی کمکم کنی آره آره آره نشد نتونستم پیداش کنم کی؟ نفر که باید بمیره اون چرا باید بمیره؟ من میخواد بهشت از من بگیره رویهانش خوب نیست منقلبه کسی نمیتونه بهشت از تو بگیره اگه بکشمش میرم بهشت آدم گناهکار تو بهشت را نمیدن من گناهکار نیستم من میخوام میخواهم ثابت کنم دو یا مازیار هردو نگران نباشند. درش رو آماده میکنیم. مازیار در باز میگردد. کجا؟ نگار وارد میشه و مازیار درمیاد. پی مازیار، تا الان هر کاری گفتی کردی، به خاطر فرزیات شما یه قاتل فراری دادیم. تو الان فهم کنم درسته. حالا چی؟ دورهایی بود که فتدم او بودی. دورهای چی؟ من و داد با لعی سرعت نیات. موجود فهمیدم بتوانی با لعی سرمن بیاره. از کجا معلوم همین امروز داددم که تو گفته نکشته باشه؟ مازیار هر چه سودتر به پلیس بگی بنه جفتمونه اون کسی رو نکششته؟ بگه نمی اومد پیش ما اون مریض کمک میخواد. این یعنی باده فرضی اون نزدیکتر میشه این دقیقه نزد دکتر تو خواهش میکنم باور کن نکن. من دیگه هیچ چیزی رو باور نمی کنم رو باور نکن. تونج کردنتون نبوده از این نیست. ولی کاش یاد میگرفتی کاری که از عوض شروع کرده تایش ادامه بدی رویا آرام خوابیده. ملافه روی اون انداخته میشه هم مازیارم نگاهش میکنه. همین پیرهنا سینکوتا تنه شبوکرا رو عطسید. مازیار از دم اتاق میره. پیش پیشنگار. ساعت 11:30 نمیشه نگار داره نوشیدنی میخوره. از این من ازش از بهشتی که راشه میاره دائم ازش حرف میزنه چیه؟ هیچی، سبام از این حرفای بی میزد نه مازیار هم نیست. اصلا فکر نمیکنه ما ازش است که ما فکر میکنیم باشه. باید بفهمی چی میخواد این کارو کار خودت. باشه این دیگه در میشه. اونا بخش زدم بهش. خب اصلا حالا رویا پیدا شد. بخواد چیکو کنه؟ حاصلات خیلی کار داریم. باید بگردین اونمور سرهنگایی که برای اثبات بیگناهی رویا کمک کنه. حالا یکی اصلا مغز دیگه کارو میکنه مثلا مثل چی؟ اول باید اطلاعاتمون راجع به اون زمینی که به رویا نده ارث رسید کامل کنیم. کامله که. کامله. یه زمین بوده که مال شوهر سابق رویا بوده. به بخش شمال بردارش این سعید مهدی عزیزی قیمتی عزیزی خب رویا باشه خلاف شده تازه این یکی از اختلافشون بوده حالا بحث اینه که همینا تو زمین شریک بودن یا کسی دیگه هم بوده نمی‌دونم خب اینو باید بفهمیم چه کمکی میکنه شاید قاتل مهدی عزیزی توی ماجره ماجرای قتل زینف بوده کسی که سر زمین یا هر چیز دیگه ای باش اختلاف داغی داشته میتونی یه سری اطلاعات درباره مورد مهدی عزیزی و مناسباتش و مراوداتش واسم بگیری بگیر از پلیس شدی همین خوش می ادامه یا تو اس که متوجه نیستی پرونده بس واسه پلیس بسته شده ما چاره دیگه ای نداره که خیلی خب باشه هرچی تو میشی من فکر می کنم این دختره نداه ممکن خیلی چیزا بزنه فقط من ارزش متنفرم نمیخوام برم سر به خوب خب. اونم میره راستی موشابه مهدی عزیزی می تو ویلاش به قتل رسیده یه آدمی که دوستش بود یا شریکش یه سری رفته اونجا رویا رو دیده اینو به پلیس هم شهادت میده میانسال و جلوی موش ریخته کسی با همچین مشخصاتی میشناسه روز بعد کافی شاف ندا وارد کافی شاف میشه عده اونجا نشستن نگاه میکنه و به طرف میزی میره مازی ها رو ندا میشی دبخشیت خیلی وقت آمدین نه نه نه از زیاد آداد به قرار این شکلی ندارم میتونستیم خونه قرار بذاریم به دلایلی ترجیح میدادم اونجا قرار رو من در خدمتونم چند سوال از از داشتم در مورد عموی مرحومتون مهدی عزیزی من ما فکر کردم شما فقط روان‌پزشک هستید. اینطور به من گفتیم همینطوره هم هست. من منم بی ارتباط با کارم و پرونده رویانی نیست. شما اصرار دارین که اون ویگونه. درسته؟ بله، فرض من همینه. ولی عموی من کشته شده. قاتلش هم رویاست. اما ممکنه اموی شما قربانی سری اختلافات مالی یا اختلاف سر زمین موروثیتون شده باشه. سهم پدرم از زمین به من و رویا ارث رسید. اگر اختلافی بود بین رویا همون بود. غیر از رویا. کس دیگه که تو ماجرای اون زمین رو سهل... جوون وارد کافی شاپ میشه. مازیار متوجه نه. اون شده. بیشتر فکر کنید. آدمی که درگیری اختلاف چندانی با عموی شما نداشته، اما میخواسته با ترفندی زمینش رو تصاحب کنه. شاید مثلا کل هم اون ها رو. همچنین آدمی می‌شناسید. مازیار نگاهی به اونا می‌کنه نه. اون جوون چطور؟ فکر همه سوالاتتون جواب داده باشم ببخشید نگار اسبی بولند میشه از کافشاب بیرون. ده. پسر جونم دنبالش. مازیارم بیرون میره و مشاجره اون دوتا رو میبینه. نگار با چیف به پسر میکوبه و میره. پسر خیلی عصبی و جوشه. چشمش به مازیار میافته. مازیار به طرفش میگرده. پسر یعقوب مازیار رو میگیره و به دیوار میچسبونه. نرسن مرا خار فیدوت می کنه چی؟ بوی پول به دماغت خورده؟ لا بات خاطر عاشق دل خسره شو دیگه گولش بزنی نه؟ چی میگی تو؟ اون بچه‌ها سه می‌فهمم اما من می‌فهمم. نمیذارم همه مال و اموال زمیناشو بالا بکشی. فهمیدی؟ حالا فکر زواج بانه داره از سر بیرون کن. و نه به جون مادرم جفتت رو می‌فیسم سینه قبرستون. مازیار رو به زمین می‌کوبه، می‌دوه و میره. مازیار دم خونی نداماد. خیفتون رو بدم تو خیابون افتاده بود ندا در چوبی ساختمون رو باز میکنه بیرون میاد اما در آهنی نرده ای رو باز نمیکنه و میخواد از لال نرده ها کیف رو بگیدی ممنون اون کی بود؟ چرا تو شده بود؟ یه احمق یه ادمی که دوچار طبخمو فکر میکنی که من متعلق به اون رو نوستم قصده نزده باید به شما میگفتم؟ نه دلی بارم جالب بود ظاهرا یه نفری هم تو ماجرای ارسو میره اون نفی نداره چون نیاز به این چیزا نداره در زندگ زندگی خصوصی من به خودم مربوط میشه فای دکتر شما بهتره به خاطر گناه جلجوت دادن یه مجرم دیگر رو به جهت متهم نکنین اینو میگه و توی خونه میره مازیار نگاش میکنه فکری میره و سوار ماشینش میشه و میره بلافاصله ماشین پلیس به جای ماشین مازیار معمولی پیاده میشه و نگاهی به ماشین رفته میکنی دفتر هم حمید. حمید پیش مازیار میاد و پشت میز غذا میشنه مازیار کتشو در میاره و میشینه خانم تلفن رو برس نکنیم دوتا من خب چه خبر؟ دارم به یه جاهایی میرسم یه سرنخ درست اصابی دختره نداره یه نامزد یا خواستگار داره که خیلی هم دوستش داره پسرم بعد جوری تمایل کامل کن که نکرده نه تنها میل کامل کن ندارو بلکه مال عزیمی رو هات اون رویا رو رویارو برای گرفت پسرش بشه اصلا شد کوشش دادن میگی عزیمیم که پسرش بشه بعد قدم عزیمی چون وارهش نداره همه زحمتش میشه به ندار رویام که قاتله پس عزیمی راست شوهره همش میشه به ندا. ندار ندام که عاشق دیگه شد تا این پسر است چی داری میگی کی دختر همشی کوشش خونهشون افتاده من خاطرات اون خونه داره خیلی خوب دارن نامزد و گار نداره. ف تونا پس ازش دیدی؟ ما سعی نخواهیم کرد امتحان کردیم. چی؟ طرفیانی می تی دو جین طلبکار کرده ش تا بزرگ. حالا بیزنس کارش چی بوده به این روز افتاده؟ به دکاری دش کالون، کالون. تکه کباب دهنش میزنه. من فکر می کنم قاتلش که یه سمت تلاش باشه. بزرگاش نه کوچیکاش شاید. ولی حالا تو این نشونی از این پسره سری بگیم. اگه مشکل باشه ماوند ما زیر سانگش پیداش میکنیم. به سری دستم. رویا پشت میز غذا نشسته. مازیار هم هست. داری بهتر میشی. اینجا راحتی. خونه خوبیه. دستی در هوا تکن بده. چه خوبی هم داره. موجه بدم هست. ولی کوتاه میاد نگار هم اونجا نشسته و مشغول مطالعه. رویا من قرار تو کمک کنم نه؟ پس به چند تا سوالم جواب بده. ندا نام زد داره درسته اون با تو و مهدی عظیمی اختلاف و درگیری داشته و او اون کیه چجوری میتونم پیداش کنم جواب نمیدی اگه بفهمم اون کیه شاید خیلی از چیزا روشن بشه من نباید در اون چیزی بگم من باید برم اون منو میکشم نگار من باید برف روی نیاز به هدایتی به آسایش روانی اومده و با مازیان صحبت. وقتی اون روز اومدن پزشک قانونی، فکر میکردم تو رویا ملک رو فراری دادی و احتمالاً بهش پناه دادی. اما وقتی با هم حرف زدیم، نظرم عوض شد و زنم رفت دیگه. اما راستش از چه پنهون هنوز نتونستم ردی ازش پیدا کنم. میخواستم ازت کمک بگیرم تو باش حرف زدی کند بار روانکا بیش کردی به نظرت چجوری فرار کرد الان کجا میتونه باشه نمیدونم فهمیدن این چیزا کار شماست نمه همینطوره تو درست میگی ببینم اون وقت تو چه برفتی سراغ ندا عظیمی از سوال جواب کردی کار ماست من ذهنم هنموز درگیر مجره ملک زدندوننه که ثابت کنی اون مریض و قاتل نیست ها واسه همین دنبال قاتل فرضی می دکتر جون اون فریع بد داده. میدونسته چه جوری ج تو بازی بکنه؟ تو نمی باث سری بشه از نظر من اون یه قاتل خطرناک بازذری به هوشیر بسیار بالاست که به موقع هم ثابت میشه. دکتر وارد وارده اتاق میشه سلام ببخشید که معطل شدی منتظرتون نبودم یعنی شما نگفته بودید که تشریف میارید. با شما کار خاصی نداشتم میخواستم دکتر مافی رو ببینم خب من باید دارم سرهنگ هدایتی دمه در درو در باز میکنه های. و خبری از رویی عمل شد هر خبری منو شخصا در جریان بگذاری خدا حافظ سرهنگ میره خاندکتر در رو میبنده نگاهی پرسشگرانه به مازیار میدازه مازیار عصبی کتشو بر میداره کیفشم بر میداره و میره مازیار توی ماشینشه به خونش رسیده میره توی پارکینگ. به در آپارتمان میرسه که آیدکتر مافی بفرمی ما زنگ منظری شما رو زدیم ولی کسی جواب نداد. ش ذ برای باز از منظر شماره داریم برین بله چی؟ اون مالی یه مضوم فراری است مازیار کلید رو میندازه که در رو باز بکنه اما دستاش می‌لرزه. در باز میشه دوتا معمور توی خونه میرن مازیار دم در می دو معمور همه اتاق رو وارسی میکنن چیزی پیدا نمیکنن و بعد آقای روی تو ببخشید منزدیشون و هنباری داره ما زیار توی ماشین بشیم بله به خونه ای رسیده خونه ای نگار با هم وارد ساخته بمشیم سلام در سرشو دارت نه من پقا نگرمه تو بودم خیلی گذاشت رویا کجاست توتا مازیار امروز وقتی رویا گفتم ممکنه پلیس بیاد اتفاق عجیبی افتاد بحشت کرده بود گفت سید سرمدی من رو داده سرمدی گفتم اگه سید سرمدی زنده است حرفی نزد رویا با مازیار صحبت یه وقتی تو خونه بودم پولیس اومد زراغم شبیه اتفاقه که تو خونه تو افتاد خیلی وحشت کردم ماشین پلیس تو خیابون بود با چند تا معمول که دائم به پنجره خونه من نگاه می کردن. هیچ کس نفهمید هید من سعید سرمدی رو کشتم از پلیس برای چی بعد می آمد سرخم شکردم مکان زنده باشه ولی این امکان نداشت برای اینکه مطمئن بشم بشن رفتن نزدیک شرکتش رویا به یاد میاره که دوان دوان از پیاده روی عبور کرده به درختی رسیده پشت درخت قایم میشه به در شرکت نگاه میکنه ناگهان سعید سرمدی و همراه دو نفر از ساختمون خارج میشن رویا سریع صورتش رو پشت درخت بینهان میکنه و باز قارون نگاه میکنه بله خودشه زنده است. رویا متحجب و وحشت زده با اون نگاه میکنه سرمدی با تا مرد صحبت میکنه و رویا باور نمیکنه دفتر دکتر مهرابی از خودش هم باور داره که سعید سرمدی رو نکشته فکر میکنم خوبه حالا میشه امیدوار بود که قتلای دیگم کار اون نبوده سالها من یه مریضی داشتم که از یک بابت وضعیت شبیه رویا رو داشت. قش تو موقعیتای خاص نیستم به شرط برش کردیم لازمه پروندهش کنم دکتر کتابی رو از توی کتاب خونه پیدا میکنم به مازیار میدهمل کلین مبحس اضاب گزند و آسیب به خونش کمکت میکنه میدونی فکر میکنم لازمه یه بار دیگه این خانم ملکس سدر ببینم مازیار از در بیرون تلفن همراهشو رو در میاره شماره همید میگیره توی ماشین میشنه و با اون که توی شرکتش صحبت میکنه چه خبر؟ خبرای خوب. چند روزی که صبر همه چیز روشن میشه. چالی بگو بدونم. مفصله. همه چیزو بهت میگم. بعد دیگه یقین دارم رویا بیگناهه. یعنی قاتل مهدی عظیمی پیدا شد؟ هنوز روز نه. مهم اینه که رویا اونو نکشته. تو چیکار کردی؟ یه خبرایی دارم، بدک نیست. مهدی عظیمی طلبکار داره که قبلا چندین باری با هم درگیر شدن. این بابا با شوهر سابق رویا مرتبط دو هفته اومداییم گذاشته. رفتم سراغش. وعده داده بودم همه طلباشو میخواد از من بگیری. از نامزد ندا من هم چنان فکر کنم آدم مهم توی ماجراونه. چه شنیدم آدم پرتوپاله و خطرناکه. یک سرام بین اینجا و دبی تو رفتم، حالا چیکار اس نمیدونه. شده وکیل واسه ندا افتاده دنبال کاراش. اینا رو من از یک قسمه کو فامیلی دورم احتیاجی میشم دیدم. تونستی اودسی چیزی ازش پیدا کنی؟ نه، اصلاً پیداش میکنم. مازیار یه چیزی بهت بگم. راستش من یه کم ترسیدم. چرا؟ امروز یه تلفونی بهم شو تهدیدم کردن. تهدید؟ چی میگفتن؟ حرفای عجیب غریبه کنم باقت پولیس بازی این روز باشی بگران نه نگران باش نه بترس همینه نشونه اینه که رویا بیگناهه بهت زنی میزم باشی حمید گوشی رو قطع میکنه و نگران به سندلیش دکی بگران نگرانه مازیار توی دفتر کارشه چند برقی رو میخونه پوشه ای رو میبنده چیزی میریسه کاغذی رو پاره میریسه صندلیش لم داده و فکر میکنه صاف میشیه نگران شده. به طرف درمی رو در باز میکنه. مردیه که ماسک جلوگیری از آلودگی هوا به صورت زده در از این اینایی ایده تو یکی مهدی از اینوی کی پشت و چرا کشتش به تو هیچ ربط نداره خاطر از این غذیارو کش بیرون جمعون تو دوست نه مرد با چاقو زربه بشه که مازیار میزنم و میره حمید به زخم مازیار رسیدگی میکنه نگار همون جاست شان سوردی مازیار من به توفتم تحتیدم کردن نگفتم نگفتم اسا از اولش دلم شور می‌زد میدونستم یه اتفاقی می‌افته گوش نکرد سلام دکتر مهرابی ام نه نه نگران این چیز خاصی نیست یهو فقط کم خراش برداشت مازیار و نگار و حمید از در ساختمون بیرون میان نگار پشت فرمون ماشین مازیار میشینه و مازیار بغل دستش حمید به طرف ماشین شاسی بلند مشکیش میره مرد میانسال توی ویلا توی ماشینی در کنار پسری جوان نشسته و اونها رو نگاه میکنه ماشین دکتر میره و حمید سوار ماشینش میشه و راه میفته مرد میانسال هم ماشینش رو روشن میکنه و دنبالش میره خونه خانم دکتر مازیار با درد شکم روی کاناپه میشینه هم موجاز و نگران گریه میره. دیگه همه چیز پیچیده شد. حال دکتر، اجازه‌م حرفمو بزنم؟ تا اینجا به حرفاتون گوش کردم. بهتون اعتماد کردم. چی شد؟ موقعیتمو خراب شد، حیثیتمون رفت. اون کس که این کارو کرد چاق رو بزنه تو قلبت. دیگه نمیذارم. از اینجا به بعد شما سپرد دستم. رونا بیشتر نگران میشه. خواهش میکنم یه فرصت دیگه بهم بدید. من میتونم ثابت کنم. تو هیچ چیز نتونستی ثابت کنی. هم خودتو تو دردسر انداختی هم بقیه رو. به چه قیمتی؟ که سبب بشه این خانم گناهکار یا نه تشخیص این کار ما نیست واقعیت اینه که اگر گناهکاره باید مجازات بشه من فکر می‌کنم اون همه ما رو فریب داده ولی ما هر کاری که می‌تونستیم براش کردیم دیگه مسئولیتی نداریم وجدانمون آسوده است این ماجرا باید همینجا تموم رویا توی اتاق میره برو در اتاق قفل کن تا پلیس بیاد پلیس بیاد اینجا هم منو میبره هم رویا رو از نظر اونا منم گناهکارم توی ماجرا با فراری داده. کاری که کردی وایسی. اگر بیگناهه رویا ثابت جو تو هم خلاص میشی. آخه به این سادگی نیست. این ماجرا یه گم شده داره. اونم که رویا میخواد بکشه. یعنی رویا توی اتاق قدم میزنه و حرفای اونها رو میشنوه. رویا بگه ما همه چیز رو یعنی رویا گوش میکنه و اشتباه میکنه. این پیچیده است. ما نیست. کار پلیسه. نگاه، تلفنتون کجاست؟ حالا دکتر خواهش میکنم ساکت میشی. باشه. با موبایل میگیرم با این کار شما بیشتر بود در درد سر میفتیم مثلا نیست چه بعد از سر مازی هم میام الو ببخشیدی که اما سرهنگ هدایتی صحبت در باز کنید پلیس خبر نکنید در باز کنید خانم دکتر اصلا به پلیس زنگ نزده بود و وانمود میکرد به نگار اشاره میکنی که در باز کنه. نگار در رو باز میکنه و رویا عشق ریزان بیرون میاد آروم بیرون میاد و به طرف مازیار و خانم دکتر اونا منتظرن که رویا حرف بزنه نمیخوام تورید بشه من باید ازیادت کنم پس بعد همون سوره که میخوام من بگی باشه فقط به تو. خواستم ازیادش کنم ولی زهرانی تنها راهش بود مدتی گذشته خانم دکتر نشسته و عصبی با انگشتاش روی میز میزنه نگار هم مدام راه میده باز میشه و مازیار از اتاق بیرون میاد فهمیدی که؟ بله میشنستیش؟ فکر میکرم میشنستمش ولی نه حالا میخوایی چیکار کنی؟ میرم سراغش باید پولیس خبر بدی بذار مطمئنشم پس ادقل تنها نرو برو دنبال حمید با هم برین همین کارو میکارو هم. مازیار توی ماشینش شماره میگیره ارتباط بقرار نمیشه به ساختمان دفتر حمید میاد. از آسانسور پیاده میشه به طرف دفتر حمید میار. ناگهان همون مرد میانسال رو میبینی که از دفتر حمید بیرون میاد. رو میگردونه به طرف دیگه تا مرد نبیندش. مرد که با تلفن همراش صحبت میکنه میره و مازیار سریع به طرف در دفتر حمید میره. الان وارد میشه و با منشی حمید صحبت کنه. ساختمونش، با آقای مهندس کار داشت. وقتی گفتم نیستن رفت. یعنی نیستن آقای مهندس؟ نه خیلی تشفیف ندارن. رفتن سر زمین دماوند. فکر کنم تا غروبم اونجا باشن. بازیار با ابروهای گره خورده با ماشینش به طرف دماوند میره به جاده میرسه که دو طرفش درخت های تن و من با برگای پایزیشون خود نمایی بکنن. سخت در فکره عصبیه که یهو یه, یه ماشین شاسی بلند مشکی از دور میبینه به هم نزدیک میشه نزدیکتر دقت میکنه همیده و بغل دستش ندا نشسته لحظه باور نکرده با کمی فاصله ترمز میکنه و میسته توی آینه میبینه که همیدم توقف میکنه مازیان از ماشین پیاده میشه و نگاه میکنه همیدم از توی آینه اونو داره میبینه. اینجا چه بد موهره انتخاب کرده بازه زمین اون تو چی کار کردی که حتی حاضر اثباتو سراملک کنه؟ ها؟ خیلق مهم نیست برای رسطوران رو سر جاده ست قضا سفارش بوده من برش میدارم گرمش باشه؟ یه بشه ما شفرم ندا قبول میکنه همین پیاده میشه نگار. همین پشت ماشینش میگست نگار پشت و فرمان میشینه و میره همیر دست در جیب میکنه ظاهرا خون سرده خاک پاچه شروارشو میتکنه و به طرف مازیار حرکت میکنه سعی میکنه همه چیزو عادی جلبه بده مازیار اون زمین که بدنی میگفتم همینه یه سری درخت توت اونجا تا درخت گلابی اونجا جواهر خیلی هم دارم که کشفتو داشته باشی فردا همین تا به مازیار میرسه مازیار با یه سیلی محکم بهش خوش آمد دیگه هیچ و این کار رو نکن خب همین خودشون باند تن هم قبول دارم یه دروغی گفتم اما انقدر اون تو رو که که اگه تو بدونی میفهم که نوت میزده تو گوشم حال کنم باید با هم حرف بزنیم من یه کمک ازت خواستم بعد از مدت تا دیدم ایت. خب تو به هر دلی که زدی نشد. بعد جان زد تو زندگی من من گازلام تو زندگی تو تو به خاطر یه تیکه زمین به هیچ رحم نکردی. نه به رویا نه به مهدی عظیمی نه به اون دختره نه حتی به من. من فقط به تو یه دروغ گفتم. همین دیگه نمیتونیم بازی ادامه بدی حمید. همه چیز معلوم شده. تو از بیماری رویا سو استفاده کردی. تو اولین نفری بودی که توخمه رویا رشدیدی. رو از من خواستی براش گواهی جنون کنم که بفسیش دیوونه خونه و زمیناشو صاحب بشی. بعدش با نداری همین دست این زمینای به او میرسه. چی تو رو به اینجور رسوند حمی؟ چی وایس صدرافتو له کنی به خاطرش آدم بکشی؟ حمید زیلی خورده رو تلافی میکنه. همیشه یه چیزیو بگو بتونی ثابت کنی. من عذری نداشتم. مرگ قاصد بودم دستم دور دستم بود. اون کسافتی که فکر میکنی مهدی عظیمیه به زن برادر خودش رحم نکرد، پول مردمو خورد، مال و مانال اینا اونو تا بخوای بالا کشید. رویا آرزوش بود اونو بکشه، توهمش نبود مازیار. صورت مازیار بعد جوری در گرفت. از مردن اون هیچ کس سودی نمی برد نه طلبکاراش نه ندا نه هیچ کس دیگه به هزار و یک دلیل یکیش طلبکارا اصلا قرار نبود زمینی به ندا برسه آره عزیز من هیچ کس هیچ سودی نمی برد با مرگ این بابا مگر تو خودش با مردنش همه طلبکاراش می فریزن چیزم نمی مود که دولت خواهد تقسیم کنه یک کارخونه هست که بابان که یه شرکه نمی کارست که ما رو مردم می میونهه یه زمین که معامنکن و قبل مرگش باکی با من حال من نقش سا ککشیدم ال اززه منون نروحش رو بگم و خودش میگم یه جای جنگسته پای بسثش داره ریات میکشه فهمیدی از آب گلولت خوستتم ماهی بگیرم این اولو تو دستم بود دست از دستم پرید فداایی سرموق چه میشه دوستان نخواهم زننده ف سرد آدمکش نیستم ما زیار ان حوزه میم از دماخ کسی خون بیاد فقط ایشتی نه نگفتم نه متی عظیمی نه نداره ایش کسی دیگه بید. اون کسیم که تو دفتر به تمریکت زدم دماغشو پرخون کردم فرستاده بودم فقط تو رو بترسونه نه که به چاقو بزنه مازیار فقط به حمید نگاه میکنه هیچ حرفی برای گفتن نمونده مازیار از حمید جدا میشه و به طرف ماشینش میره اینقدرم به این سکر یکو چرا من این شدم و حمید در زمین خشک و بی آب و علف تنها میمونه کتش رو در میاره و بی هدف راه میره و پا بر زمین میکنه حیات خونه نگار مازیار در کنار نگار با رویا صحبت میکنه صورت مازیار کبود شده مهدی عظیمی زنده است تو رو نکشتی همونطور که سعید سرمدی رو نکشتی تو بی گنای پس بهشت مال منم هست پلیس مهدی عظیمی رو دستگیر کرده و سوار ماشین میکنه ماشین حرکت میکنه هم میدیم از بهش چیه زمینی که همه این ها از اون شروع شد مازیار بیشه سرهنگ هدایتی باید. من من همیام چون رو که میدونستم نوشتم فقط در مورد قطف سعی سرمدی دیگه همیچی رو میدونم. ون جسد سوخته جسد مهتی می نبود این ماجرا پرندش کامله البته همه شو به حساب خودم نمیذارم سعید سرمدی هم زنی از کارکنان شرکتش که اخفالش کرده بود به قدر رسیده به این ماجرای خانم ملک زاده در مورد پدرش هم مرگ طبیعی هم چنان بیشترین احتماله حمیدزادی هم دستگیر شد مقامت چنداری نکرد و به همه چی اعتراف کرد اعتراف کرد؟ از جمله به دوستیه با شما امیدوارم این بار دنبالی نباشی که ثابت کنی اونم بیماره الان کجاست؟ تو باز داشتگاه. منتظر ازام دسته را جرمش خیلی سنگینه سرهن کمی فکر میکنه حالا یه حمیتی نده ببینیم هنوزم هم بهت میگم تو خیلی ضروری ولی من خیلی چیزایی روز گرفتم پا نزفه من مجرمم هستی پس اگه دست کردم کنید منش بسن پارتی بزید مازیار توی راهروی آگاهی راه میره به سلول زندانی ها رسیده قصد داره نزدیک بشه اما راهش ادامه میده سلول حمیده حمید نادم به رفتن مازیار نگاه میره. مازیار توی ماشینش با تلفن همراه با نگار که توی خونه از حرف میزه. یعنی چی؟ کجا رفته ؟ نمیدونم فیلم کردم دیگه همه چی تموم شده؟ دی خیلی حواسم بهش نبود فکر کنم بدونم کجا رفته؟ یعنی امیدوارم. مازیار با ماشین در حرکته به جای خوش آب و هوا و سر سبزی میرسه از ماشین پیاده میشه. دست در جیب می کنه. و به کلبه ای که لابلای درختان سرسبز هست نگاه میکنه. رویا رو می بینه که با لباس سفید و روسری قرمز در آرامش داره اونجا قدم میزنه. رویا مازیار رو از دور می بینه. نگاهی میکنه و با لبخند سر به زیر مازیار چشم از اون بر نمی داره. و رویا رضایتمند چشم بر هم مازیار که خیالش راحت شده محل رو ترک میکنه و به راه خودش میره همراه آرزو می کنم حاصل تلاش این هفته من و همکارانم مورد توجه شما قرار گرفته باشه صدا برداری رادیو فیلم آدمکش به عهده استاد بزرگوار علی حاجی نوروزی بود فرشاد ازنیو هم که سردبیر این برنامه است و در مقام تهیه کننده زحمات فراوانی میکشه بنده هم بهرام سروری نجات هستم که نویسندگی و گویندگی این کارو به عهده داشتم تا رادیو فیلم دیگر خدا نگهدار هبیان دات نیت، جنجی نیسوتی،